خب بسم الله الرحمن الرحيم باب زكاة المعادن باب زكاة معادن معادن تلا نقره ميس آهان إلى آخر ميجي ولا زكاة في شيء منها إلا في معادن الذهب والفضح زكاة نيست در معادن ديگر جز در معادن طلا ونقره اذا بلغ المأخوض منها بعد سبک و تصفیت مئت درهم ورقا او 20 مثقالا ذهبا زمانی که رسید اون معدنی که گرفته شده بود از معدن اون طلاو از معدن گرفته شده بود البته بعد از گداختن و بعد از تصفیه کردن آ؟ اون معدن طلاو نقره ایران مختلفی داره. پر از چیزای دیگه هستن. بعد از تصفیه، بعد از میگه بعد از تصفیه زمانی که اگر نقره بود، به 20 درهم رسید و اگر طلا بود، به بی 20 قال رسید. آ، یا خروج منهما، منها ربع العشر انکثرت مؤنتها خارج میکنه از این. و نقری که از معدن اونا رو استخراج کرده اگر زحمت و هزینه زیاد بود ربع اوش رو یک چلونو و ان انقلت و اگر اون زحمتش اون هزینه ش کم بود اون موقع خمسه این معدن تلاو نقری رو شکار میکنه این و نقری رو استخراج کرده از معدن خمس شنو زکات میده یعنی یک پنجم این یعنی چقدر؟ یک پنجم و يراعي فيها الحول لانها فائدتون تزكى لوقتها میگه در این چیزی که از تالا و نقره استخراج کرده حول اینجا دیگه مراحت نمیکنه اینجا حول دیگه شرط چون این یه فائده هست و همون وقتی که گیریش میاد چکارش میکنه استخراجش میکنه تصفیهش میکنه زکاتشو میده تمان اخ... یک بار؟ ها؟ تمان یک بار؟ نه نه آیا یک بارم آیا که دیگه موقع که گیریت اش رو بعد بده بعدن سال بعدی اگر شام به همه انداز بازه تا آیا که دیگه جدا و يضم ما اصابه في ایام المتتابعه و جمع کرده میشن یا با هم کرده میشوند اونایی که در روزای پیدرپه‌گیرش میاد مثلا دیروز کار کرده امروز کار کرده پری روز کار کرده یه هفته پشت سر هم اینا رو با هم میکنه اینا رو با هم میکنه و زکاتش رو خارج میکنه ف انقطع العمل اگر اون بحث استخراج و تصفیه و اونا رو قط کرد ثم عاوده سپس دوباره کارو بعدا جداگونه شروع کرد استعف از سر نواد چیکار میکنه شروع میکنه مثلا پس میگه و ما و معصب و ف الام جمع میکنه اون چی که گیرش اومده در روزهای پیدر به رو میده اونایی که در روزای پی در پی گیرش اومده اونا رو به هم چه کار میکنه؟ جمع میکنه زکاتشون میده و اگر عملو قطع کرد دوباره اثر اثره نو شروع میکنه پنج روز کار کرده مثلا سی مثقال گیرش اومده خب طبق اون تفصیلی که گفت ربع اوش یا خمس اینا رو میاد چکار میکنه خارج میکنه بعدا این امال کرده بعد اومده مثلا دوباره شروعش کرده گیریش اومده فرزن ده مثلا مزقه مثلا, مثلا, مثلا. مثلا به نوانمسال میاد این دیگه با اونا حساب کرده نمیشه این حسابش جدایه باب و زکات رکازی باب زکات گنجینه گنج و کلو مال وجد مدفونن فی مواطن او طریق سابلن من درب الجاهلیت کلن در بحث گنجینه یا گنجی که میگیم خودمون به چه شرط از این زکات میاد؟ بله وكل مال وجد مدفونا في موات مجهر مالك يافتود مدفونا مالك دفن بود، مالك تيود؟ دفن بود في موات، داريك زمين موات بصاحب زمين مثلا متعلق بكسي ليس موات أو طريق صابل یا در یک راه پیموده شده راهی که از اونجا رفت آمد هست راهی کنجا چه هست منبر بالجاهلیه. ولی از ضرب جاهلیت بود اون مال مثلا مشخص بود مال جاهلیته اسمی از اسمای شاهان جاهلیت روش بود نوشته بود خلاص علامتی از علامه شنو داشت از زرب جاهلیت اون مال که یافته شد از اموال بود که مال مسلمین و دوره اسلام نبود علامت جاهلیت روش بود از سبیکها ها و از زده های جاهلیت بود فهو لواجدی اون مال مال یابنده اش هست و علیه اخراج الخمس اذا بلغ اصابن و بر اون یابنده هست که یک پنجمش رو خارج بکنه زمانی که میگه بلنصاب رسیده باید این اختلافی هست بعضی میگن اگر بلنصاب هم نرسه خب کاری نداریم فا این استبقه ها حتی حال علیه الحول زکاه اگر اونو باقی گذاشت تا حول ازش رد شد اون موقع دیگه زکاتشو در میاره یعنی همون یک چلو میشه، چل یک شو پس مال گنجینه رو تعریف کرد که چه زمان یک پنج مجموعی میتوی زمانی که مال از جاهلیت باشه و اونو شخص بیابه و این وجد مالا فی ارض مملوکه. و اگر یافت مالی رو در زمینی مملوک زمین کسی زمینی که صاحب داره هو فی الظاهر ملک لربها ولیث بالركاز میگه این ملک همون صاحب زمینه و رکاز نیست ولو کان من ضرب الاسلامی فهو لقطه اگر اون چیزی که اونو یافت اگر اون چیزی که اونو یافته از ضرب اسلام بود علامتی از علامتهای اسلامی داشت ای برش نوشته بود نام شاهی از شاهان اسلامی روش بود اون دیگه لقته هست دیگه رکاز نیست دیگه گنج حساب نمیشه حکم لقته رو داره خب لقته دیگه حکمش مشخصه تا یک سال میاد اونو نگاه می داره و اعلام میکنه معرفیش میکنه بعد از اون برش میداره و تفصیلات دیگر و كذلك لو وجده بارزا همچنین میگه اگر اونو مدفون نیفت بلکه بارزش یافت آشکارش یافت باید در پس ریکاردهمون دافین هست مون چیزی که دفن در موارد که در این مورد دیگه فقها اختلافات خاص خودشون داره. با تمام شد.